بسم الله الرحيم العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء وسيد المرسلين واله وصحبه بعد ما يبحث قابلين ونم 24 من درس مختلف ومختلف فن وصن فلما الف رحمه الله المقتضى والمقتدى فن الوصف المهم واهمهم وتكرر وكثف و جايان و اب الله و ابن أسل شخصان عامي محمد بن عبد الواسطي الأجلي و محمد, محمد بن حبان الباثلين و محمد بن حبان و محمد بن حبان الباثلين و بن محرر الله العالم تأمت المخدمة المجدد علقها للناس للفقير إدراكم بن عمر عمر بن حسن ربط كتابه ورثاقيه ورثاقيو للله الذي اصطر سعف عن عن يوم الخميس عن يوم الخميس 10 ربيع ربيع الاول ربيع الاول صحيح ربيع الاول ربيع الاول اولي سنه 3800 في حدث الذره على النبي الله عليه وسلم محمد خاتم النبي وعلى اله وتاكيد اجمعين بله آخرین موحصمون معتلف و مختلف هستن که چند تا موضوع در زیر این مسئله وارد میشه نه تنها معتلف و مختلف نیست کتاب های افراد هست اه... کتاب بحث تحریف و تحریف هم هست تیر از مسائل هست که مونده و یا در زیر همین مسئله جا, جا میگیره و یا اینکه با به بحث دیگری هست غیر از این مسئله که معلف ازش یاد نکرده. بحث معتلف و مختلف به عنوان چارویی 24 مین مطلب تعریفی ازش یاد نمی کنه فقط از چیزی که هست میگه فنی هست خیلی بزرگ و مهمترینش اون چیزی که تکرار درشت بشه و زیاد باشه مثلا اسمی که اسم اشخاصی که مثلا زیاد باشه مثلا محمد عبدالرحمن دخت و محمد عبدالرحمن داریم دمشقی داریم صنعانی داریم فلانی داریم معتلف از دهاز شکل و نمیدونم اسم و اسم پدر ولی که مختلف از شخصیت ها اینها مهم‌ترین نشناسیه این که راوی بتونه تشخیص بده اون محدث بده تشخیص بده که اینها کدومند کی از این مثلا بالپرس؟ وقتی که میگه حدثنا حدثني سوفیان. حالا راوی میگه حدثني سفیان علی سفیان سفیان ثوری هست سفیان ابن عینه خب یک از علوم که باید ما بفهمیم که اونها که از لحاظ اسمی با هم مختلفن و از لحاظ شخصیتی با هم مختلفن خود مختلف و مختلف تعریفش اینه که اونها، خود معتلف چیزیس که یا اسمهاییس که با هم از لحاظ خط یکی از لحاظ نوشتاری یکی هم و از لحاظ لفظ با هم مختلف هم معتلف و مختلف اصل علمش معتلف اونهایی که از لحاظ لفظ از لحاظ صورت نوشتن از لحاظ شکل نوشتن با هم یکسان و از لحاظ قراعت و تلفظ مختلف هم ستا نوع داره این مختلف نوع دار مختلف نوع اولش اعتلاف در شکل و حروف ولیکن مختلف در حرکاتش مختلف در حرکاتش در تلفزش از لحاظ نوشتن یکیه سلام و سلام نوشتهش یکیه که در اعراب بذاری یکی سلام بدون تشدید یکی سلام با تشدید نام یا جایی میشه در از لحاظ نوشتن یکیه ولی که از لحاظ، آلا غیر از اون تشدید، از لحاظ خرکات، او اش و اشت، سراج و سراج. حالا سراجش که آلا جداگانه در مسئله قبلی جا میگیره، یا سراج و سراح. سراح. یک نقطه کمه. از لحاظ اعجامش، از لحاظ نقطه گذاریش خوصدن این سلف دنوبش. اطلاف از لحاظش شکل نمیشتن. سراح. و سراج شکل نوشتن یکیه ولی که اونجا نقطه داره اینجا نقطه نداره عباس عیاش بله و سبومیش که مختلف از لحاظ خط ولی که مختلف از لحاظ بعد از فروف مثل زنیر و زنین آخرش نون و اون قبی آخرش را زنیر و زنین جز اولا از فنهای معتلف و مختلفه و یک ارتباط تنگا تنگ هم با همونطور گفتم تشریف و تحریف داره با تصریف و تحریف میگه که شاید مثلا خیلی از این اختلاف ها یا اختلافات خیلی نادر باشه مثلا اسمایی که شاید خاطی بشه مثلا اجمد ابن عدیات فکر می کنم بعدش اوه تحریف کجا شده این اجمد نیست احمد این دستوری ها ما زیاد میبینیم تو کتاب ها مثلا یکی یکی یک از روسان نشسته بودیم تو کلاس های شیخ عبد المحسن عباد باز به حالت یک طنز گفت یک روز یک کتابی رو می یک از محققین علامه محقق مدقق فلان فلان فلان نوشته بود خب یکی کتابشو دیدم باز کردم دستم میخوندم تو کتاب بعد ظلم کتاب یک اسمی بود به اسم مثلا بنت لبون خب بنت لبون معروفه تو کتابای فقی بحث بنت لبون همه شد توری کلاب الفرس بحث انواع شد تور بنت لبون و بنت فلان و فلان و, فلان و فلان. بعد نوشته بود در خاشیه لم اجد لها ترجمه <تصفيق> بنت لبون دکتر لبوبیشین نوشته بود در حاشیه محقق ترجمه و نمی شناختن شخصا ترجمه برای شخص ندیدن بنت لبوب که حالا کسی که نمیدونه بنت لبوب در کتابه فقهی یک نوع از نماشطور فکر میتونه که ولی این بنت لبوب انسان یک دختریه یک زن محدثه هست که باید دنبال دنبالش باشه در کتابای ترجمه ولی این محققینی که لب فرد اسمشون هم دکترم گذاشتن قبلش دکتر فدانی که علامه و فرخامه هم پسونده و پیشونده هم داره حساب الله و فران و فران هم دنبالش نرشته این هم از بحث اینچنین اشتباهاتی که بعد از محققین درش واقع میشن خاطر همین کتاب های مختلف و مختلف نوشته که ما قاتی نکنیم اجمد یکیسی احمد یکیسی این اجمد نه نه احمد و همچنین آبی لحم آبی لحمی آبی با علف با آی کلاهدار. اب لح نیست بعد رو می کنن لح این اب لح نیست ابی لح و ابن اتش و ابن آتش آتش افارسی فرق می کنه بعضی فکر می کنن ابن آتش این آتش نیست اتش این اتش لفظه به قول خودمون خودمونی اتومی آتش رو می کنن اتش و همچنین محمد ابن عباده عباده راجع يكون ابن عبادة دراس محمد بن عبودة الواسطي العجلي ومحمد بن حبان يكون ابن حبان ابن حبان يس حبانه ابن محرر وشعيب ابن محرر, شعيث ابن محرر. بعد شعيب, شعيب ابن محرر يكون شعيب ابن محرر كشته با ابن محرر والله الله و عالمه خلاصی بحثی که مصنف بهش خاتمه میده و در این کتاب رو میبنده و آخرش هم تمت المقدمت الموقضه علیقها لنفسی که الفقیر ابراهیم ابن عمر ابن حسن عبوباد الروحائی در شب مقدمه را نوشته در شب پنشنبه پنجشنبه شب 15 همه روی الابان ساله <سيو دو ومي>. يعني الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد خاتم النبي على آله والصحبه أجمعين سبحانك الله محمد سبحان الله محمد وصلى الله محمد على آل محمد